برای میخچه ی نشان دعای تعویزی داری به ما بگویی به طربت ارزنا، به ریقت بازنا، یوش فاسقی بونه به اذن ربنا را دم بعد با آب خیس خیز کنید، محل هم بمالید، برای این هم مفید است